مباحثه طب المعصومین دکتر لبی بیغون از شعیان اسناعشری مایجستر دانشگاه دمشق صفحه 161 حرف و دال و دواعا و شفاعا درد و دارو و درمان به گونه ای که احتمال برگشت بیماری نیست مدخل ورودی بحث قرر القرآن الكريم مبدأ المعالجة به ها یک داخلی شرب و دو نوشیدن دارو و دو و خارجی الدهون و القسل انواع روغن مالیه یا روغن ها استعمالات خارجی به صورت پماد یا ضمات و همچنین شستن مثلا شستن دستا ها قبل غذا خیلی این مهمه. چون یکی از علل ایجاد و گسترش سارس که آمپونانز های پیشررفته دست نشستن قبل از غذا. یا رارو ذلك که این معالجه به هر دو شقش چه داخلی چه خارجی؟ آشکار میشه از فرمایش خدای متعال که برای ایوب پیامبر على نبینا و آلهی و علیه السلام حین طلیه به مرض جلدی انگامی که مبتلا شد به یک بیماری فقال له ارکو برجلك که هذا مقتسل بارد و شراب، پس هم بحث قسله با آب تمیز و هم بحث نوشیدن آب و آشامیدنی سالم که به نفع بدن آدمی باشه در سیدی نورسه و سوونی از مرکز مطالعات کامپیوتری قوم 20 بار این دو کلمه ارکوز برجلک آمده اونها رو همه رو تحقیق کنیم نگاه ای ادفع برجلک الارض چند آلاکی فيها نبعتا اولى فابتسل منها ثم تند لك نبعتا اخرى فاشرب منها تبرء باذن الله از این بیماری پوستی نجات پیدا میکنی هاتان نبعتان فيه ما مواد طبیه من نوعین مختلفين الاولى تعالج المرض جلدي خارجيا كالمرهم مثل انواع مرهم که از چه قبلا گفتم مثلا مرد مخلوط با حنا زماد شد زد خارش و زد اگزمای پوستیه مثلا محلول سرکه سیب زد خارش زد اگزمای پوستیه که به پوست بزنیم مثلا مرهم فرز کن روغن کشنه عربا میگن قص با قاف و ت دسته دار قوی ترین دارو ضد خارش پوست و ضد اگزما پوستیه و ثانیا فیها مفادمان ضاد حیاوی للالتهاب به اصطلاح امروزی‌ها به اصطلاح امروزی‌ها آنتی بیوتیک حالا قبلانا همستون گفتم مثلا آنتی بیوتیک و چای خوش‌کننده طبیعی چیه سیب درختی رسیده شیرین آنتیبیوتیک بیوتیک طبیعی سیب درختی شیرین تو روایات شیعه آمده که چه خوشم پنیسیلین طبیعی پنیسیلین طبیعی چیه شلغم که تو روایات شیعه اصل با سین همچنین الف تو ت آخر هر دو تعبیر تو روایات شیعه آمده بحث شلقم شلقم هم پنیسیلین طبیعه حتی ما منا اگر این شلقم رو اف وسط نس کنی دو پلش کن بعد وسطش یه کم گوت کنی توش عسل بذاری اگر کسی بیماری دیابت نداره پودر شاخه نبا بعد بذار کنار پنجره تیه تمیز صبح که پاشین همه آب داده این آباشو شخصی بخوره در درمان سیاه صرفه و صفه های خشک و یا مکرد خلتی خیلی قویه بعضی خون هستن هستند و چهشون که سیاه دارن با همین درمان میکنن و من میشناسم تو سطح مشر اینم یه کم خواستم توضیح بدم معمننا ف شرای به مریضال جتل مرو منداخل جس چقدر تو رو واتش میگه تبدارانتون رو محمومی کن با حجیمی محمومی کن تبدارانتون رو با تفاح با تفاح با سیب رسیده درمان کن تو سیبای رسیده سیب رسیده سبز مخص پسی به سلح امروزی ها سیب رسیده گلاب خراسان یا شاهی حتی روایات خاص هم داریم که جلو حضرت ایجوری بود تا طرف اومد گفت آقا شما گفتین سیب قرمز معتر لبنانی مثلا به قول امام رضا یاجبونی که تو بهار علامه مجلسی از جلد 66 چاپ اسلامی تهران جلد 63 چاپ بیروتی جدید یاجبونی سیب قرمز معتر لبنانی من امام رضا علیه السلام به تعجب با داشته از بس خاصیت داره و مفیده برای سلامت فرد. و خانواده و جامعه های بزرگتر اصلا به قول امروزی ها یک ریز مقضیه کامله تو بحث تغذیه صحیح یک ریز مقضیه کامله و شعار جهانی بهداشت در سال 2002 میلادی همین بود وان اپل تو دی روزی یک عدد سیب بخوری دیدی مومن ها از درون تبت قطع میشه و فونت داخلی ابه میره گفتیم چه خوش کنه آنتی بیوتیک طبیعی صد سحر زد لنم آنتی هیستامین طبیعی اچ کیزیای بیمارد میشه با اینکه سنگ مجرای چشم نداره با اینکه حساسیت فصلی نداره اما مشکلش مشکل گیرنده اچ در جدار معده سی به درختی شیرین که بعد هر غذا یکی بخوری یک آنتی هیستامینه. كنا يريد أن تداره الشميع أنت يستمين ضد حساسيات مثلا والآية آية القرآن جمعت النوعين المتكاملين من العلاج شه علاج داخلي مثل شرب الدواء بنوع التبع شه علاج خارجي مثل دهون و قسل فبرأة أيوب بقدرة الله تبارك وتعالى الدواء الذي لا داء له داروی که هیچ درد و بیماری نمیاره قیله تو روایت هم داریم بعدم میخونم آدرستش هم میکنم قیله اجتمعین در ملک کسرا اربعتون من حکما نزد پادشاه ایرانی کسرا چهار تو از حکمه درجه که شهار کشور بودن یکی کشور عراق یکی کشور روم یکی کشور هندوستان یکی هم کشور سودان حالا به نسبت وطنشون یا نسبت ورده عراقی رومی هندی سوادی مورد کشور سودانه فقال لهم کسرا کل واحد من کم یصف لی الدواء الذي لا دا معه هر کدومتون برای من توصیف کنید امر ملوکوال بود دیگه شاهانه بود هر کلمتون برای من توصیف کنید چه دارویی هست که مصرف بشه هیچ عارضه سوئی نداره هیچ درد و بیماری به همراهش نمیاره یه نکته‌ای بگم مهمان قبل از اینکه اینا رو بخونم در رابطه با حضرت ایوب اگر بخواید تحقیق کنید در رابطه با همین مس... مسئله پوستی یادداشت بفرمایید اون آدرسش نگفت بهار علّامه مجلسی، طبع بیروتی جدید، جلد دوازده صفحه سیصد و شصت هف، مکتوب النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين، مال فقيه و محدث بزرگوار سد نعمت الله الجزائري از علماي قدیم، صفحه دویست هف، اونجا داره حضرت ایوب علا نبی نوالی و علیه السلام مبتلا به این بیماری بود به مدت 18 سال و تمام فامیلاش و مردم ازش دوری گرفتن از قریب و بعید همه ازش فاصله گرفتند. مگر دو نفر از اون دو نفر هم یکی جیغش در آمد گم نکن این گناه بزرگی مرتکب شده که به مبتلا است. این معرفتش به معصوم نشونه بیمعرفتی ها مثل بعضی ها که مثلا اسم مبارک معصومه میبرن ها. بعد میگه گرحمکالله بابا گرحمکالله واسه غیر معصومه نه واسه معصوم معصوم مصومه از خطا و اشتباه حالا یکی از اینا کم زرفیتی بود مومن ها. بعد گفتش که این مردم از فامیل و غیر فامیل که او رو ترک کردن به عنوان رافزی یعنی کسی که از خدا دوره از جامعه هم دور باش این هم مضاعف. مزعف این هم چند تا نقطه بذاریم تا آخر دیگه نگاه کنیم خواستم یه چیزی بگم بیشتر نمیخوام بگم حالا دنبال مبایست خودم خادشاه را که مثلا اینجوری گفت چهار تا از حکما عراقی و رومی و هندی و سودانی بودن فقال العراقين صفحه 162 فقال العراقيه الدواء الذي لا داء معه تشربه كل يوم ثلاثه على الريق من الماء الساخن دارویی که هیچ درد و بیماری نمیاره اینه که صبح ناشتا آب گرم بخوری آب گرم آب گرم فرق میکنه با آب جوش ولرم آب جوش ولرم میشه الما الفاتر با دو نقطه یعنی آب به نقطه جوش برسه یه پنگ دقیقه بجوشه و شعله خاموش کنه وقتی که شرایط عادیه شرایط بحرانیه بمباران شده زلزله شده سیل اومده بیماری عفونی افونی مثل تیفوس و ابا تاغن اومده حالا آب به نقطه جوش برسه 20 دقیقه به جوشه پس شعله رو خاموش کنیم تمام غذا و مایات مخصوصا آب همه در پوشت داشته باشه. در بست داشته شد موکم خب اینا میشه ماع الفاتر با دو نقطه اما اینجا عراقی چی چی گفت اون روایات بود که گفته ماع الفاتر فرمایش امام صادق علیستان این ماع ساخن عراقی میگه میگه آب گرم یه حافظه اشتباه بعد توضیح میدم قال رومی: الدواء لا داء ان تبلع كل يوم قليلا من حبر وشاد رومیه گفت هر روز اگر شاهی یا تخم شایه جرجیر میگم یا جرجیر یا رشاد ترتیزک زک خب اگر هر روز یه مقدار کمی از این بخوره این دارویه که هیچ درد بیماری نمیاره اینم هم اشتباه عموشم. چون حافظه رو ضعیف میکن وقال الهندی ادواؤلذی لاداء معهو انت اکل کل یوم من ثلاث حبات من الحلیل جل اسود گفت روزی ستا حلیله سیاه بخور این هم راست میگه اما اگر کسی التهاب کلیت روده داشته باشه کلیت روده یا التهاب روده اینجا دوچار شکم روش دائمی میشه و سوادی ساکتون اون متخصص سودانی همجود ساکت بود و کان احذق هم حازق ترین ماهر ترین در تبابت این دکتر سودانی بود تو اون جلسه پیش شامه فقال له الملک لما لا تتکلم چرا حرف نمیزنی شما فقال یا مولانا الماء الساخن يذيب شحم الكلي ويرخى المعده قاب گرم که بخوری اینجا پی کلیه رو آب میکنه این حرف اون متخصص سودانی تو روایات شیعه داریم اگر کسی در حمام اگر کسی در حمام با خانومش مجامعت کنه پی کلیه آب میشه شحم کلیه قابل از همه کسانی که حمام سر خونه دارن جا قهطیه <تصفيق> و یرا خیلی معده لیزی معده و کلیت روده میاره کلیت روده که آخرین پیشرفته علمی هم میدنه و حب بر رشاد اون رومیه گفت رشاد هر روز بخور اونم که یه جو یه صفرا یعنی بیماری مره و المرار میاره خب مره و مره که ازدیاد مایه صفراوی و پمپاج صفرا به اسم عشر کن میشه نه تنها حافظه ضعیف میشه آدم خلمدنگ میشه خبلون یه تخت آدم کم میشه دوزاریش کج میشه بفرم وله حلیل جل اسود تو علم پزشکی جدیدم هست ولی هلیل جل اسود اینم اگر کسی مومن ها نداشته باشه خودش مزاجش عادی باشه که اگر سندروم روده تحریک پذیر داشته باشه پی سی او میگه اصلاح خبایی اون کیست تختانه پی سی او نه سندروم روده تحریک پذیر آی بی قول با قوله اینجا کسی که سندروم روده تحریک پذیر داره اگر حلیله سیام هر روز بخوره حالا اگر نوع دومش باشه که شخص همیشه اسهال داره با بدتر میشه که سرومی میشه باید هر چند روز بله بسکن. فساق فهم بوده؟ فهم. وله حلیل جل اسود یهی جز سودا زریب بیماریه یه عصبیش بیشتر می دار. اگه گفتی چرا؟ چون املاح بدن و مایعات خونیش کم میشه. شه طرف پرخاشگره بی حوصله میشه. زود از کوره در می کنید حالتای کلکلی پیدا کنید گاهی درگیری با خودش داره یعنی با خودش را میره حرف میزنه زنه یه دستاش می مالونه یه یعنی علامتای آغاز میشه. این های که میگم واقعیت دارم فکر که میگم یک جا میشینه مات فکر نمیکنه تو خیالا با ای دعوان کنه با ای دعوان کنه به ای, ای سور زن داره به ای سور زن چه فامیل چه غیر فامیل آن این حالتش میتونه میشه یعنی از حالت افسردگی عادیا، میره تو افسردگی درونزا بیماری مالی خولی ها قال فمن لذی تقول انت شاه این یعنی شاعر کسرا گفتش که چه میگی شما متخصص سودانی؟ فم اللهی تقول انت قال سوادیو. متخصص سودان گفتش یا مولانا به این شاعر دارو اللهی لادا معه یک. ان لا تأكله ایلا بعد الجوع. حال معصوم ما رو دوزیدن والبلایم میکنه ان لا اللا تک اللا بعدل ج غذا نخوره مگر بعد از گرسنگی نگی حتی اون لغمان حکیم انبیا همه نور واحد معامنا دیگه. حتی مثل لغمان حکیم که چند هزار پیغمبر معامنا چی در کرده بود از هر هم یک کلمه یاد گرفته که یه روایات همه تو به حال هست کتابایی دیگه هست. اینا قبلا که گفتن اینا قذا نخوریم مگر بعد از گرسنه شدن اشتهای کاذب نداشته باشی اشتها به غذا واقعی و طبیعی باشه دوم و اذا اکلته حالا که غذا می‌خوریم به مقدار لازم بخوریم یعنی مصرفت بهینه باشه مثل اما بعضی اینجوری نیستن ها. مثلا بعضی هستن وقتی که استرس می‌گیره تشونو پرخوری استرسی دارن بعضی یا برعکس هم. وقتی استرس میگیره توشون یعنی نگرانی مستمر میگیره کمخوراکی استرسی دارن یعنی مثل کسی که گلوشون فشار داده یا مهده شون چلونده افراد استرسی ها که نگرانی مستمر دارن دو جور گاهی مبتلا میشن به پرخوری استرسی گایی مبتلا میشن به کمخوری استرسی که ناشی از بی اشتهایی عصبیه اونا خیلی توپ میشن اولی ها. اینا خیلی لاغر لاغر لاغر, لاغر میشه چوب کبریتی میشه با اینکه که سوی تغذیه هم نداره علب واهر کمپول هم نیست علب واهر تسار فهمونیم؟ به خاطر این بیماریه حالا اینجا اگر بیماری زمینه ای خاصی نداشته باشه حالا که غذا میخوری یا ریز به مقدار لازم بخور مسافت بهینه باشه و ازا اکلت فرفع یده که قبل شبع قبل از اینکه تو کاملا سیر بشی. یعنی تا ازا بلغت الحلقوم نخور که اگر کسی گفت چی خوردی دستی میگه آه اینو خوردم نه یک سوم معده تو خالی بگذار برای هوا که تو روایات شیعه اومده خب اگر این دو تا رو رعایت کنیم تا وقتی گرسنه نشدی غذا نخوری خوب. کاملا سیر نشدی به حد اشباع نرسید سرلیز نشود دست از غذا بکشید فانك لا تشكو الا علت الموت هرگز دوچار درد و بیماری نمیشه مگر درد بی درمان که حضرت اذرایل تشریف بیاره لا یستدم ساعه ولا یتاخرون ازا کان اجلهم وقتی که عجل حتمی بیاد اجل حتمی بیاد دیگه راه نداره مسافر حقیقی و واقعی باید بری چه حالا زاد و توشه وس آخرت داشته باشه چه نداشته باشه خب حالا علت الموته علت مرگ سبب مرگ به دو نوع است گاهی به نوع عجله معلقه سل رحم انجام نداد احسان به والدین نکرد صدقه نداد یا به نوع عجله حتمی اونم که دیگه هر فرد و هر قومی یه عجله حتمی داره ازا جا عجله هم لایستق ولای استاخرون از این قول متخصص سودانی صد برابر بهتر اصلا قابل قیاس نیست فرمایش گهربار امیر المؤمنین علی علیه السلام به فرزند معصومش امام حسن مشتبا علیه السلام دوتا معصوم با هم گفتگو میکنن دایلوک مخاطبه تا بقیه افراد بشر فرمایش این دوتا معصوم رو گوش کنن عمل کنن خودشون هر دل عملن بناس دیگری بشنوه و بفهمه و عمل کنه. گرفتین مؤمنات چی میگن؟ وقتی معصومین با هم صحبت میکنن نه نه اینکه اون دیگری عمل نمیکنه یا نمیدونه. نه این از باب این که مخاطبین دیگر بهشون بر نخوره چون گای گوینده زرفیتش کمه شما یه حرف حقی میزنی به جایی که قبول کنم نه اه حای چرا من نماز خوندم یعنی باطله ما همین مشکلاتو تو کاروانهای کربلا یه کاروانهای مکه داریم این روحانی مؤمنه با ادب متوازه میگه آقا اینجوری نماز درخون ای یعنی من عمری خوندم باطله یا گوزوش بد میگیره معاملات یا قاستش بد انجام میده یا ذکر نمازش بد میگه خب بابا روحانی معظم شیعه شما رو دوست داره میخواد همیشه نماز صحیح باشه مقبول درگاه خدا باشه یه یک کلمه لقی بزنیم. بحث نه ورزش که نیست بحث اینه ای که این صلات تو خدا قبول کنه پس روحانی معظم شیعه تو کاروانهای کربلا یا مکه و مانند او که به زائرین و مجاورین و مسافرین و غیر اینا تذکرات لازم رو مینن به نفع خودتونه. لجبازی نکن، خودگیری هم در نیار. بخشش از امر تو شاگردی کن. حتی گوینده. تا به جایی برسی. اگه یک دنده لجباز بشی، حرف حقم گوش نکنی همیشه دیگه مونده و واپسگرایی. سیرت قهقرایی میشه. علم اصول هم خونده باشی اساسا قهقرایی باطله. رسول مومن حالا فرمایش امیر المومنین علیه علی السلام به فرزند معصومش امام حسن مشتبه علیه السلام یا بنی علا اعلمو که اربع کلمات تستغنی به ها عنقب این واژه تستغنی به ها عنقب در روایات شیه هفت بار اومد سیدی جامل احادیس نور دو نور سه نور هفت تا سند اومد فقال الحسن علیه السلام بله فرزندم دوست داری به چات کلمه حرف حسابی یاد بدم که تو از این پزشکی قدیم و جدید و متداول و غیر متداول و مرسوم و غیر مرسوم و علوم قریبه و غیر علوم غریبه نجاتت بدن خب بله آقا جان ما همیشه گوشمون ظیرای حرف حق معصومه قال عليه السلام امیرالمؤمنین علی علی السلام فرمودن لا تجلس على الطعام الا وانت جائع سر سفره قضا نشین مگر اینکه گرسنگی واقعی باشید گرسنگی واقعی نه گرسنگی کاذب ها حالا گرسنگی واقعی مدلش فرق میکنه قربون معصومه لفظ نکره میاره اسم فاعل میاره جائعان الجائع تازه از چیزا نمینه چون گرسنگی اقسامی داره یه بار من گرسنه از حیث معده یه بار گرسنه‌ام از حیث کمبود املاح یه بار گرسنه‌ام مثل اله... کلسیوم فسفر اینا پتاسیم یه بار دیگه گرسنم از حیث فلزات مفید مثل روی، مثل منیزیم مثل آهن، مثل مص حالا خب این سریجای خودش بحث بود اینجا سوء تغذیش به خاطر این فلزات مفید بدنش کمه مثلا منیزیوم هم کمه ضعف حافظه شدید آهن هم کمه آنمی فقر آهن دارم خونی آرزی فقر آهن پوتاسیوم و منیزیوم و بروم هر ستا کمه ضعف ازولات بدن دارن چه ازولات ارادی بیماری دیستروفی چه کل ازولات بدن بیماری میاستنی گرال ها فهماش بگم آه. نکره میاره نکره کلی طبیعیه اسم جنس افرادیه کلی مشککه مشترک معنویه به اصطلاع علم و اصول عموم علال عام اطلاقیه هر فردی با فرد دیگه فرق کنه قابل عرض همیدان در داخل خاج کشور همه تون گرسنه و همه هم تشنه حالا گرستنگی ها و تشنگی ها فرق میکنه هر کسی گرسنگی و تشنگی خاص خواهش پیدا کنه مومن ها رفع این دوتا کنه تا مبتلا به بیماری سوء تغذیه نشه حالا چه سوی تغذیه جسمی و بدنی، چه سوی تغذیه روانی، چه سوی تغذیه عقلی، چه سوی تغذیه رفتاری، چه سوی تغذیه اخلاقی، چه سوی تغذیه حکمتی، چه سوی تغذیه عرفانی. بیشتر بحث نمی‌کنم سخت میشه. فقط یاتمون تیترا به گفتن؟ پس همه سوی تغذیه دارین. اونی که سوی تغذیه نداره معصومه، امام معصوم علی صنم. این که میگن آقا بعد العشاء الاخره سوره واقعه بخون به خاطر این آیه آخر سوره واقعه مولا صاحب زمانه فهل من ما معین که تو روایات میگه اگر مولا صاحب زمان در غیبت کبرا قرار بگیرد از چه کسی میخوایی علم و حکمت بیاموزید بفهم سوره تغذیه ما کم بوده ما چیه؟ علم و یقین به اضافه حکمت نه لفوازی و فرضی بافی که تو دنیا پر شده چه داخل کشور چه خارج کشور مزارب ساختگی، علفان ساختگی. سختگی, سختگی. کلام فلسفه یونانی کلام فلسفه ناتنی کلام فلسفه نه. حکمت الهیه علم و یقین از علم دنیا خوزانه همه نزد معصومه من و شما فرضیات و لفظیات بیشتر از علم و کلمات علکیمون لقویات لحویات بیشتر از حکمت متعالیه حکمت متعالی الهی ها دیلی محتاج معصومی هر کسی تو هر پس سر هر مجلسی نشیم حتی مجلس علم و مباحثه علمی مشاوره علمی مجلس علم و مشاوره علمی که یاد خدا درش نباشه این علم علم نافع نیست این علم علم حجابه دنیا و آخرت زایه پس باید مجلس علمی بشی بشید بشینی که علمش علم نافع باشه و من و شما رو دائما به یاد خدا بیندازه خدایی که صفت ثبوتیه علمش عین ذاتشه پس سر این مجلس علم بشینید چینین مباعثهی باید بشینید مومن ها تی این خیلی حرف مومن ها و ولا تقم عن الطعام و الا و انت از قضا خوردن دست بکش و حال این که هنوز اشتها به قضا خوردن داری. همتی تو روايات میگه اگر اشتهات کاذبه ها یا سرد مزاجی افت متابولیسم بازال دارین یا کم خونی یا کمه و و چند تا نقطه بزن. یکی از چیزهای بسیار خوبی که اشتهای کاذب رو از بین میبره خوردن خرما بعد از قضاست تو روايات شیعه ده وسائل شیعه جلد 17 چاپ اسلامی تهران میگه بعد از قضا هفتو خرما بخور. اگر کسی کم خون شد به نوع فقر آهن من بهش جایزه میدم. اگر کسی فشار خونش از 11 تا 12 اومد پایین من بهش جایزه میدم. نمیاد پایین. کسایی که فشار خونشون پایینا بعد هر قضا هفت خرما بخور. اگر کسی رشد موهای سرش کمه من بهش جایزه میدم. رشد موهای سرت زیاد میکنه. هم پرپوش میکنه هم در درمید به شرطی که پیاز موت از بین نرفته باشه، به شرطی اینکه که پیاز موی سر از بین نرفته باشه هر کسی این هفت خرمایی که دین میگه نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر بعد قضایت هفت خورما بخورد. اگر کسی مبتلا به پوکی استخوان یا بیماری استعوپروس شد به جایزه میکنه. اگر کسی مبتلا شد به بیماری راشیتیست یا نرمی استخوان که وزن بالا رو را تحمل نکنه پاش حالت پرانتزی بشه. من بهش جایزه میدم. شما تو جیره غذایی خودت و اولاد این خورما رو بذار تو سبد خانوار تا محتاج قرصای شیمیایی داخلی و خارجی نشه. فواید دیگه هم دارم چند تا نقطه بذارم. حتی یکی از علل افزایش شیر در پستان مادره چون ترشوه هورمون لاکتوجن در قدد شیری پستان مادر در دستگاه گردشی خون زیاد میشه حالا قدد شیری فعال میشه از لوبولهای های پستان شیر جاری میشه با این یکی داره بچه شیر میده این یکی پیرهنش خیس میشه نه شیرش رو سه بچه کم میشه نه پستانش خوش میشه جغب میشه که درد بگیره این محتاج این دکتر رو دکتر بشه هنوز فواید داران چند تا نقطه بزنیم قربون چه آدم میگه بعد از قضا هفت خورما بخور کسی بدنش دونه میزنه گرمزاجه خب میتونه به همراه قضا چند برگی کاهو بخور میتونه شبایی لیموشیرین بخور تاکه بدنش هم دونه نمیزنه این بهتر از این چیزاییه که قرب و شرخ تو کتاباشون میگه نگه برای این که اشتهای کازبت از بین رود بعد از قضا یک شکلات بخور یا یک دونه زبون بخور یا یک پادرازی این قنده های شیمیایی که ساکارازه علاز ظاهر که بخواد اشتهای کازبت از بین ببره کرم بدن رو کرم بدن رو کم میکنه و قند سفید شکر سفید چند تا نقطه بذار مساویس با مرگ سفید یعنی آمرم کوتاه میکنه این میخواد اشتهای کازر من رو از بین ببره او خرابی نمیگه هم کروم بدن منو رو کم میکنه کروم با میم هم کروم بدن من رو کم میکنه و هم عمرم کوتاه میکنه قربون چهار در محصول برم هم سلامت فرد ایجاد میشه هم تسبیت میشه هم استمرار پیدا میکنه هم افزایش طول آم میشه دیدید چقدر کلام معصوم ارزش داره اصلا قابل قیاس نیست با کلام بشر عادی تو تخصصی گوارش و غیر گوارش حالا یکم بحث تخصصی تغذیه کردیم رو کلام معصوم خیلی بایسی نا هنوز مطلب دارم من اندازه ظرفیت بعضی افراد تو سطح جهان دارم حرف میزن فازش کم میکنم سبون چی فرمود امیر المومنیم و دل مزغه خوب غذا رو بجو. برای غذا خوردن نیم ساعت وقت بگذار. با عجله غذا نخور. حواس پرت غذا نخور. نه جویده یا کم جویده غذا رو قورت نده. تا سرسوزه معده نگیری، ترشا نگیری، تخمه نکنی، سردل نکنی. و دچار یوبوست نشی و زمینه ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری فراهم نشه. و اذا نمت و نمت صعب نفسك على الخلاء هر وقتی که می‌خواستی بری بخوابی قبلش برو دستشویی به اصطلاح قدیمی‌ها مسترا برو به اصطلاح جدیدیا هنگام خواب به دبلیو سی برو <تصفيق> به اصطلاح شرعی برو تخلی کن به خلا برو به اصطلاح گروه های سلفی و وهابی دورت المیاه که عربی جدید رو این رس شده اینجوری میگم عربی جدید نداره. اول اخری دستشیه برو قبل از خواب دستشیه برو بعد تو روایات شیه چی میگه میگه بعدش برو وضوع بگیر وضوع شرعی نه وضوع بر چپه وضوع شرعی بگیر یعنی احیاء سنت رسول الله کن چه محبه چه شیعه چه سنی وضوع شرعی بگیره یعنی وضوعی که رسول الله انجام میداد اون وضوعه بگیره پاشستنم قبل از وضو مستحبه ما نوکر رسول الله ایم. مبلغ احکام خدا هر جور رسول الله وضو میگیره ما همه جور وضوع میگیره هر کسی که مخالفت کنه با سنت رسول الله ما با او مخالفیم چرا؟ چون خدا رو ناراحت کرده، خدا ازش راضی نیست. خدا میگه من قرآن مجید عظیم کریم رو فرستادم، مبلغ امین محمد امین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این رو هم فرستادم. پس هر چی که تو قرآن هست، این رسول الله تفسیرش تبیینش کرده. بعض یا اگر علامت سآل براشون هست میگن شاید حاجه قد توضیح کمه یا من نیمی فهمم باز حضرت زهرا و دوازده امام معصوم گذاشته برای تبیین و تفسیر بیشتر که همون سنت رسول الله رو برای من و شما گوش زد میکنن و توضیح میدن برای کسی که سوادش کمه فهمش کمه نمیکشه کشه فهمایش معصوم رسول الله رو سیزده معصوم دیگه حضرت زهرا 12 امام معصوم فرمایش رسول الله رو توضیح میدن فرمایش خدا رو توضیح میدن ما هر کسی که به حرف خدا و کلام خدا و فرمایش رسول الله گوش کنه عمل کنه دوست داریم هر کسی که بخواد از خودش ببافه چه قدیمی باشه چه جدیدی باشه ما با اون مخالفیم چون که خدا با اون مخالفه پس اینجا مؤمنا ببینه قبل از خواب آدم دستشوی مییره ان نصر بدني فاز استعملت هذه هذه وقتی که این چهار دستور رو رعایت کرد هر فردی از افراد بشر از جمله مسلمانان و محبین اهل بیت اسمت و طارد استغنیت عن الطب از این پزشکی بدنی و روانی راحت رو می بشیم دیگه نیازی به دکتر و پزشک نداریم حالا بحث طب روحانی هم داریم طب روحانی یعنی بحث روح که رمان یا جسم سیال و بحث نور که از نورانیت انسانی و از نورانیت ایمان نیفتی اینجا باز ادامه داره برای افراد خواص تو روایات چیه داریم؟ هر کسی که دوست دارد خواب وحشتناک نبیند قبل از خواب بعد از این که رفت میره دستاش میشوره؟ مزمزه قرغره استنشاق همه اینا تمیز مصفاک قبل از خواب مستحب بعد وضوع میگیره وضوع شعری اون وضوعی که سنت رسول الله هست. ما وضوعی دیگه قبول نده وضوع شعری میگیره همچون که رسول الله وضوع گره بعد از وضوع هم مستحبه یک زکات وضوع رو بده نُقطة سند در روایات داریم بعد از اینکه وضوء شرعی گرفتی زکات وضو رو بده اللهم انی اسالک تمام الوضوء و تمام الصلاه و تمام رضوانک و الجنه و تمام مغفرتک نُقطة سند داره که قبل از تمام مخلف هفته و تمام مغفرت اضافه کنی این دو تا سنه میشه 9 این زکات وضوئه هر کسی که دوست داره صلاتش معراج المؤمن باشه زکات ووزوشو باید بده توضیحش هم بده بعد از اینکه این, این دعا رو خوندی مستحبه یک بار آیه الکرسی بخونی و سه بار سوره قدر چند تا فایده داره؟ یکیش وسعت رزقه خب رزقم که فقط پول نیست اسباب توفیق زیاد میشه یکیش هم چیه؟ نورانیت علم عقل فهم عمل سالت میره بالا حاله نوری ایمانیت گسترده تر میشه و زخیم تر یکی دیگه از اسباب توسعه رزقه چیه؟ عقل فعال کاربردی، روح روان توش یا جسم سیال فعال میمونه و به درخشش ظاهری و باطنی میرسه استعداد درخشان آینده نگری سعی روشن زمیری و سیرت کامل در انجام کار و صلوات بر محمد عالم همه